I'm me. glad we could do this. My message to the Israeli people is very simple at the end. We, the children of Cyrus, the children of Queen Esther, the Persian queen, need your help. And today, your response is bombing us or helping us? برشم بطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرام عوض روز چاشنبست و یازده هم از ماه اپریل در روزهای چاشنب و عدت یک ساعت خدمت شما یکی صحبتی آقای رزا پحلوی کرده این شهازاده با یک ارز کنم که تلویزیون کانال ده نمیدونم ده کجاست اسرائیل که حقیقتا تحقیر ایران بوده من تعجب کردم از حرفای این مرد با این استن. حالا شخصیت سیاسی مثلاً آقا یک آدم معمولی در خیابان، اهل سو، نگاه آقا بمبارو نکنیم، جایی نکنیم چیز خوبی است. ولی کسی که شخصیت سیاسی داره، مثلاً ظاهراً که نمی‌دهد بشه نت بگوید که آقا شما ما رو بمبارو نکنیم. خواهش می‌کنیم بمبارو نکنیم. ما همود بچهای استن هستیم. حورش دو یار تون بیاد چقدر یهودی نجات داد؟ ما هم بچهای استریم. آقا چه بچهای استریم مرد حسابی؟ این دست داستان صادق حسنی حسینی است رو می‌نویم. آقا از خشایارشها می‌گوید امیر ایرانی شاگرد استر هستند، نمی‌دونم. بچهای استر شما هم تو بچهای استر هستن. بچه های استر. بچه های استر. حالا خشایارشها دانش یهودیه. خیلی خو. اما نه کدی ایرانی بچهای استر باشند. و ازش بگردیم صادق استریل رو پیدا کن و بینی کن آن نسل استر است. ده ده. حالا شما ما رو بمبارون نکنید خواهش میکنید بیاید به ما کمک کنید حالا من اگر شما بگم به ما کمک کنید یا ما رو بمبارون کنید حالا کدومان رو میکنید آقا این چه حرف هایست محرس سیاسی بیزاره مگه ایران؟ مگه ایران؟ نمیدونم به قول معروف بانانا استیته که شکر اسرائیل بیاید بمبارون که به ما التماس کنید مثل این که عرض بکنم که دهشت ایرانیان رو پرستند و اونجا نشستند دورنگیری میکنند به دامان اسرائیل که اسرائیل خواهش میکنه و باقی این چه هر پیز این چه چگونه سخن گفتنیت مارند که یه دایسی اسات میکنه بین بمب آران و کمکی به ما کدام چشم میکنی کمکی به ما کمکی به کی مثل این که از کنم که اسرائیلیها مندان بین دو اльтرانتیف که این یکی از اینا انجامش مشکلشون رو حل بکنه یکی کمک به این آقاست به ما یعنی به من دیگه یکی هم بمباران ایران حالا کدومهاش بهتره آقا مشکل اونا که این نیست که مرد حسابی یه وقتی نادرشا از هند برگشته بود با اون کبکبه بود با اون شوکت و اون دبدبه بود به قول قدیمی ها چادر زده بود در خراسان یکی از این مردمای مشهور رفت و پیش لیه این یکی از این خوانیان بخارا اونجا وی چاپسی کردو شوید که من نادر صحبت کردم. قبلا قربان ما رفتیم کسبت خانه بخارا ایشون به ما با عقیده مناس بنیان سلیم متعصب ایشون به ما گفت شاه شما رافضیه من گفتم که نه ولی ای شاهم شما هم به دین شاه شماست یک مرد به نادر گفت چی گفتی مرد حسابی تر افتی پیشی تنبکو فروش بخارایی ما رو کچی کردی، از تمام جهان امپراتور ها میخوان بیان به پایبوس تخت ما گفت که آقا سلمانی بیا بری سر آقا رو چهار را کشیدن، سوار اولاق کردن، اولاق ماده دوم خرم دارن، دستش در سفا بگردن که از این کار رو نکن. نادر رو تحقیر نکنه پیش این خانه بخارایی. داده مشکل این ما اسرائیل ها چیز دیگه هست مشکل زیاد دارن یکی که نمیخواهن که هیچ کشوری در بامریکر در این منطقه مصاحب قدرت بشه هزار رو فتنه هم داره مردم اسرائیل نمیگه ما دولتش نمیگه هزار فتنه در کار ایران دارن میکنن از موضوع نمیدونم پان ترکیست بگیرید تا تحریت نیروهای زده بطنیه کرد در منطقه و هزار رنگ دیگه دارن نعش بازی میکنند برای تزیت ایران و اینها نمیتوانند ببینن و گرفتاریشون انجام که آخوندها پام و اتمی به سازند و این تکنولوژی رو توصیه بدن و بعدی رو ترکیب کرد همهش بکشارن و در اونجا این الگوریتم نیست که به تو کمک میکنن مرد مزلفوار که الان دیاب به تو کمک کنن یا بمب بزند. مرد سیاسی که امریکت خودش رو تحقیل نمی کنه که آخر اونم در مقابل یک کشوری که یک وجب, وجب جاست تنباک و فروش بخارایی شد داستان